با درود به عزیزان دستن در کار رادیو فرهنگ به ویژه استاد گرامایه استاد جنیدی وقتی میبینم جوان شنونده ای این برنامه هستند هستند امیدوار میشم شاد میشم به امید روزی که همه ایرانیان هویت خود رو به خوبی بشناسند و با سرفرازی از تاریخ و سرزمین و نیاکان خود یاد کنند آیه محمد صادق اخلاقی از اندیشه شاد باشید <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بعد این سوال در مورد سلام بسوندن خدمت شما و گفتند که از استاد بپرسید درباره واژه واژه مانند خوابیدن خواندن و ریشه در چه زبانی دارد با سپاس فراوان شاد باشید روزگانتون خوشعایر راه شکتتی از جمع و ریز به یار بنیاد آقای شوختی اینا همه در اوستا از خوف نه در پهلوی داریم خوف نه وسپ خوابیدن با وسم تا اینجا یک کم کم باز زبان فارسی ما و رو پایان نمی‌کنیم اما در بعضی از زبان ها مثل مثلا کردی هنوز خواب رو خواب میگن یا البته خواهر که خویشو میگن یا خوشکه میگن اما جاهایی که خواهر میگن و باز و تلفظ میشه خواندن همچنین در کورسون بیشتر اینها بر زبان میادین. این قبلا این بوده که کم کم در زبان فارسی کم شده ولی نه اینکه از بین رفته باشه ریشش هم همه در اریستاس بله پرسیدن با سلام و خداوود معنی اسم نجلان چیست زهره خانم از جیرفت درود بر جیرفت پم. پسوند لان که یعنی جایگاه اگر این نام یک روستا باشه پسوند جایگاه داره لان در خیلی از نام ها این لان چه به صورت پسوند چه به صورت پیشوند وجود داره و نژ یک واژه شده است که بعد درباره اون داوری کرد بند. با سلام از استاد بپرسید اقوام گیلان از کدام قومند؟ ساروخانوم از بندر انجلی درود به بندر انجلی گیلان، گیلان و طبرستان میزد فریدون دارن دیگه شما میدونید که گرچه اینو من قبلا گفتم ولی بل. بازم گفتن بعضی تازه میپیدنم. وقتی که ما ایرانیان پیروز شدیم بر زاخکیان یعنی بابلیان و کشور به دست اقوام افتاد این چند بیت در شاهنامه اینطور بوده که آمول گذرست سوی تمیشه کردنی فریدون در آن نام برپیشه کرد کجا که از جهان کوس خانی ورا جز این نیز نامی ندانی ورا این کوس پایتخت فریدون بوده که خوشبختانه پیدا نبود تا چند سال پیش من موقعی که کتاب زندگی و ماجد آریانی میفشن اینو پیدا کردم در نزدیکی آمول دو رستا هست نزدیک هم به نام کوس محله و کوسه کورس رز یا کورس زر نشون میده که از اون شهر باستانی که فریدون ساخته بوده که ویران شده در روزگاران دو بخشش به نام کورس هنوز باقی مونده و در حقیقت تبرستان و گیلان نزدیک ترین اقوان به فریدون آریایی هستن که بعدها ما میبینیم که موقعی که کسرا حرکت میکنه میره به طرف تبرستان که ابیاتش این که زگرگان به ساری آمول شدند به هنگام و آوای بلبل شدند در دهشت یک سر پر از بیشه بود دل شاه و ایران پرندیشه بود این رو گیلانیان و تبرستانیان نمیتونن درک بکنن که ما که از اون سو از کبیر می وقتی که این انبوه درخت رو ببینیم این دهش یزدان این همه زیبایی این همه, همه. ما نوت میمونیم یه دهش خداوند در دهشت اکثر پر از بیشه بود این سخنیه که فردوسی گفته و خب هر برای خود تبرستانی خیلی ساده است من یه بار دیگه هم شاید گفتم برای شما که دوستی داشتم اهل آمل که میگفت من در بیجند ازداشت کردم و بعدن بعد از مدتی پدرزنم اومد به دیدار ما و وقتی که اومد مثل انسان های منگ بوده چند روزی و موقعی رفتن من این رو بردم که هواپیما ما برسونم که برای به اون در پایان جسیدن به به من گفت که فلانی من یه پرسش از شما بپرسم. ببخشید بعد من گفتم بفرمیم گفت آخه شما بالا اون کوها چطور رفتیم درخت کشتیم که یک درخت رو باید با اشک و آه بزرگ می‌کنم. فکر کرد <تصفيق> که اینجا همه درخت رو کاشتم. به گفت این مدتی که پیش ما بود، این گیجی و منگیش مال به خاطر همین بود. فکر می‌کرد که ما ها یعنی ما کویریو همت نداریم که درخت بکاریم، اینقدر سرزمین سبز کنیم. اما در این اینقدر درخت کاشته میشه. در هر صورت این بیت اینه که در و دشت یک سر پر از بیشه بود دل شاخ ایران پرندیشه بود زهامون به کوهی برآمد بلند یکی بارهی بر نشست سمن سوی کوگان بیشه ها بنگرید گل و سنبول و آب و نخشیر دید همین گفت که داوری یه خدای نما راه و فضا گنده جای جهان آفریدی به دین خرمی که از آسمون نیست پیدا زمی که هم همسریدون میجسن پرست به این جا وگه ساخت جایی نشست درود به کیلان و مازندران و طبرستان که فرزندان فریدون هستند من باز هم از پیامک ها میخونم چون خیلی زیاد هستش اول بعد دوستان پاسخ شما رو بگیرن درود بر شما البته اینا رو من این سواله که میگم شما در برنامه قبل فرمودید مونتا تکرارش خیلی مهم هست و فکر میکنم درستان خیلی از چنونده ها نوشتن این یه سوالی هستش که در نصال در عقل ده پیامک پونزه پیامک من دیدم درود بر شما تجاف و دیو سفید و اجده ها در هفت خان به چه معنی است؟ و چرا رستم وقتی از توران برگشت تحمینا را با خود به ایران نبود؟ راه کنید سپاسگزارم. درود بر شما من که در این در حالت گوشهای شأنومه که به صورت راز و رمز هست صحبت کردم بله را گفتم که تخمینه عبارت از, از این سرزمینه که سیستونیون میون اونجا و در اونجا زاد بلد و ولد میکنن یه نژاد تازه‌ای به نام سهراب پدید میاد بنابراین سرزمینی رو نمی‌دونستان برگردونن به سیستون بلکه حتی خودشون هم موندن و وقتی که مدت‌ها موندن مثلا 100 سال 200 سال 300 سال اینها به یاد سرزمین خواستانی خودشون رو افتادم خواستان بیان که متاسفانه اون این خواهدات های سخت پیش اومد. و اما داست... تجاف تجاف با فیر نمیشن. تجاف من اینجور میخونم خب تجاف همون تغلی میکنم تجاف یعنی آب تیز یعنی آه. جایی که یه رود تیز داره یه رود با صورت وقت این دیوان و اینها همه برقیقت کوخ ها و بلندی های تبرستان هست که ایرانیان میخواستن که اینها را به چراگاه مرکزی خودشون بیخواستن اینها چند بار صحبت شد و بیشتر از همه از نوشتار و گفتار و استاد بزرگ تبرستان آقای دکتر ستوده بهره بردیم که تمام این بلندی ها رو در تبرستان تا گیلان یا دوین میگن یا دیو میگن یا دوین یا بالاخره هم همینطور هست. یک بار هم در دو بار هم در تاریخ ادنرفتیار در حقت اومده در تاریخ تبر که مثلا جملهش اینه که همه سال ثبت خورشید برای شکار و شراب بزیست پر دوینی رفتی که کاه ثبت فرآخواان بود. دوین اینجا خودش به خوبیشون دینی کوه دنی پایین کوهی رفت که بالاش کاخ ثابت فروخان بود. این دو ها رو ایرانیان گرفتن تا به چراگاه دشت مرکزی افزودن منتها در اینجا گرفتاریهای بود مثل سنگ و راه بود خار و ابر و بعدم قررش بزرگترین دوین که دوین سفید باشه که دماوند باشه و از حرکتی که دماوند میکنه نشون میده که یک آتشپیشان مجدد یا آتش بشان هم اگر نبوده در حقیقت یک فعالیت مجدد بود که در اون بخش کسانی که رفته بودند و بلندی ها رو با با شکست و با سوختن رو برو میشن که این نشانه پیروزی دیو سفیده ولی بعدها باز و این دوینا ها همه در اختیار ایرانیان رو قرار میگیره بفهم ادامه داستان نورد پهلوانان رویه الان رویه چند هستیم استاد؟ رویه چه هستیم رویه چهل دفتر سوم شاهنامه فردوسی شما که شاهنامه فردوسی این پیامه که هم اومده که ما الان نشستیم بعضی از دوستان گفتن آتشی روشن کردیم و در کنار آتش... شاهنامه فردوسی رو بر و داریم گوش میدیم. یه خانمی هم گفتم من تازه روشن کردم رادیو رو، مهمونا رو فرستادم رفتن. تا مهمونا رفتن رادیو روشن کردم که برنامه رو بشتم من با خانواده. کاش با مهمونا میشتیدین. گفتن آلا. چیزی که گفتن بله و در شاهنامه نبرد پهلوانان اگر شاهنامی، غیر از شاهنامی استاد جنیدی ده بدو گفت بیژن که اگر کام من نجویی نخواهی مگر نام من شوم پیش سالار بست کمر زنم دست بر جنگ, بر جنگ حومان و هومان ببر از آنجا بزد اصف و بر کاشت روی نزدیک گودرز شد پوی پوی که ای پهلوان جهاندار شاه شنو هر کار و زیبوی زیبا نه زیونده در خور چو دستور باشد مرا پهلوان شوم پیش او چون حجب ردمان چو بشنید گودرز گفتار رو گوی بدیدان دل و رای خوشیار رو گوی زشادی برو آفرین کرد سخت که از تو مگرداد جاوید وقت بخت. بخت به صورت جاوید از تو هیچ وقت روی نگرداناد به هر کار را و دلیر به هر جنگ فیروز باشید تو شیر شیر نگه کن که با او با آوردگاه آو توانی شدن زن پس آورد آو خواه بدو گفت که ای پهلوان هنرمند با دلیر و جوان مراگر ندیدی برزم فرود زسرینی ز دوباره زسر باز باید کنون آزمود مرا زندگانی نه اندر است گر از دیگرانم هنر کندر است اگر باز داری من را از سخون بدان رو کاهنگ هومان مکن بناولم من از پهلوان پیش شاه نه خواهم کمرزان سپس نه کلا خندید گودرز و زود شاد شد به یکی سر و آزاد شد به تو گفت نیک اختر و بخت گیف که فررند بیند همی چون تو نیو یعنی پهلوان تو را دادم این رزم هومان و من مگر بخت منکد بود راهنمون به نام جهاندار یزدان ما به پیروزی شاه و گردان ما جویدون که پیروز باشی بروی تو را بیشتر نزد من آب روی شد از اسب روی زمین ببوسید و بر باب کرد آفرین در دو حرف دو حرف پیش من گفتودن که باب یعنی پدر بزرگ که در مصحا اشتباه نوشته اینجا تو اینجا درست می‌بینی که پدر بزرگ پیاده شد از از روی زمین ببوسید و بر باب کرد آفرین، به خواندان زمان گیو را پهلوان سخون گفت با اوزه بحر جوان. چون این داد پاسخ پدر را و پسر یعنی گیو که ای پهلوان جهان سر به سر، مرا هوش و جان و جهان این یکیست، به چشمم چون این جان و او خار نیست. بدو گفت کودرس که ای مهروان جزین برد باید بر بر گمان. یعنی اینطور نباید گمان بریم که این فرزند کوچیکیه که پهلوانه که هر چند بیژن جواب است و نو به هر کار داوطلب خرد پیشرو به کینی سیاووش به فرمان شاه نشاید به پیوند کردن نگاه فکر نکن که این فرزند سوره و یوان منه و من به این خاطر اون نباید بفرستم شاه فرمان داده و کین کی هر کسی که میتونه بر این نوبت شرکت کنه نشاید شکستن درش را به جنگ نپوشید باید تو نام و ننگ یعنی نباید بپوشونیم از او گرفتن نام را یا برخورداری از ننگ رو. او باید بره یا باید ننگ نصیبش بشه که شکست بخوره یا باید نام نصیبش بشه این نام و ننگ با همه ما نباید بپوشونیم باید امید داشتشون که او با نام برگرده که چون کاهلی پیشه گردد گیرد ج... جوان بموند منش پست و تیر روان چو پاسخ چونین یافت چاره نبود یکی با پسر نیز بند آزمود بند یعنی آزمایشش کرد بدو گفت بیژن که این نیٚو واب دلم رازکین سیاوش متاب نه هومان زرویاست و از آهن است نه پیل ژیان و نه اهریمن است یکی مرد جنگ است و من جنگ جوی از او بر نتاوبان به وقت تو روی نوشته اگر بر سرم دیگر است اینجا نمونه ها بردن مگر اگر اگر بخونیم به این تحتیب که من میگم درست داره نوشته اگر بر سرم دیگر است زمانه به دست جهان داور است یعنی جانو در دست خداوند چوبش نید گفتار پور دلیر میان بسته جنگ برسان شیر فرود آمد از دیزه راهجوی جوی سفر داد و در ازیاوش از بدوی. بدو گفت گر کارزارت هواست خرد چنین بر خرد کام تو پادشاست یعنی خرد رو بکار نمیگیری. کام تو بکار میگیری. اون کام خود تو بر خرد پیروز کردی. بر این باره گامزن برنشین که زیر تو اندر نوردد زمین. بیا به ساون خوش رژیان به چین سیاه وخش بسته میان اینجا دو بیت در شانوم به دو گونه آودن که من از این دو تا یک بیت رو بروردم به این ترتیب بیا آمد به نزدیک و هومان دمان یکی بانگ برزد بران بدگومان که گر جنگ جویی همی بازگرد که بی همی با تو جوید نبرد تو بشنید هومان بدو گفت زه زره را بکینم تو بستی گره یزدان سپاسو و گم پناه کتاور پیشم بدین رازنگاه کتاورد یعنی که تو رو آورد خداوند تو رو آورد پیش من به لشکر برانسان فرستمت باز که گیو از تو ماند به گرم و گداس یعنی اندوه و رنج و گداس. یعنی رو برمیگردنم چه سود است کامد به نزدیک شب رو اکنون به زنهار تاریک شب. من اکنون یکی بازلشگر شوم به شبگیر نزدیک مهتر شوم یعنی میرم شبگیر صبح زود نزد پیران که مهتر سپاتوران هست. از آنجا دمان گردن افراخته بیایم نبرد به را ساخته. از آنجا گه روی برگاشتم به شب دشت پیکار بگذاشتم. Thank <laughs> you. جنیدی از داستان های شاهنامه برای ما میخوانم در برنامه پنجره های روی مطوب تلفن های برنامه دو 2020، 220 85 220 588 2020، چهارصد ۸5،۲۵نج و شماره پیامک ماسی هزار است. سی هزار پانسد و میکنم این رو ننویسید لطف دارید به برنامه هم اینکه ما رو نوازش میکنید محبت میکنید به ما از شما سپاس گذاریم و نگید این چندمین بار پیامک میفرستم باور کنید الان یک حدوداً شش صفحه ما شش صفحه سی تایی فکر میکنم پیامک ها باشه من الان اومده من دارم تو بین اینها با نظر استاد دردیار انتخاب میکنم و میگم بعضی از سوالات شما تکراری هستش تلفون بنیاد نشاب رو خواستید من عرض میکنم این رو همین الان که میتونید سوال بفرمایید بعضی از سوالاتتون رو از استاد با این تلفن 828 96 27 82 4 یک باید دیگه میخوانم 828 96 27 82 این تلفن بنیاد نیشابور هستش شما میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید و در مورد شاهنامه اگر خواستید با بنیاد میتونید تماس بگیرید شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی رو درخواست کنید که اونجا هست یه سوال اومده که برای منم خیلی جالبه استاد گیرا همونطور که نابخردان عبیاتی به شاهنامه اسودند 100 درصد طبیات زیادی را هم هست کردند. برنامه شما و شما در مورد این قضیه چی هست؟ محسن از کرمانشاه؟ دروت بر شما اون کسانی که به شانما افسودن نظرشون بود که شانما را گسترده کنن تا این محمود تنگ چشم که بسیار دست و بود و فقط برای چند به نظر فیدوسی بود که اینقدر سله می به این شاهران نادان خود فروخته ولی هیچ هیچگاه فیدوسی به طرف توجه نکرد دوبار فقط از اون نام برده اون را یک بار نفرین کرده ستم باد بر جان و ماه و سال کجا بردن شاه شد و سگاه دیگه در سخن پایانین شانامه است که در گفتار رستان فرخزاد که بر این سالیان چهار سب بگذرد که این دوده کس تخت را نست چود بنده بی هنر شرحیار نژاد و بزرگی نیواید به کار این دو بیت از فردوسی است که هر دو در نفی محمود گفته شده بزنید که نامشو ببرد فقط اشاره کرده بنابراین اونو خواستن که یک افسانه درست کنین که محمود فردوسی هم همانند دیگر شاعران میخواسته از خان بیدریق سله های محمودی که از کشتار و تاراج و بیرانگری و آدم کشی او به دست برخوردار برخدار بشه خب در زمان مدود من اینها رو شو به شما رو بردم. در زمان مدود قضنوی یعنی نوی محمود این کار رو کردم و پنج شاعر موضوع رو جمعه کردم که شیوه ی اونا خود به خوبی نشونده که با هم دیگه فرق داره و اینها به شاهنامه افسودن خوشبختانه از شاهنامه کم نشده در سر تا سر شاهنامه شاید دو سه جا هست که ما بینیم پیوند گسسته شده و شاید مثلا یه بیت یا دو بیت اگر میبود این پیوند قرار میشد اونها همه کششان این بود که بیافزایند به شاهنامه و این روان فردوسی و روان نیاکان بود که این یادی کرد چون اگر واقعا کم کرده بودن از شاهنامه ما از خودمون پدید بیاریم اما افزودند ما میتونیم ها رو نشون بله. در نسخه فلورانس ما مورکی را که دانه کش است در مسقی لندن میازار موری که دانه کش است کدام درست است سپاس فراوان مفهوم درسته چون اگر بخوام بگیم کدام درسته <تصفح> امتیاز داشتیم مفهوم اینه که در ایران باستان اون زمانی که ایرچ نام میگیره یعنی فروتنی اون زمان آزار جانوران رو درست نمیدون که بعدها همه تو در فرهنگ ایران جاری هست و در مرتکان هزار در تمام معطای حقوقی و دینی حتی ما می‌بینیم که آزار جانوران شایسته نیست و مفهوم از آن ایرانه و درست هم هست نیست که میبینیم سعدید اینجا برفروخته میشه و میگه که سیاخندرون باشد و سنگ دل که خواهد که موری شود دل نه. آیا کتاب مهاجرت آریایی ها در بازار موجود است؟ من میدونم داستانشو چیه شو دوست دارد؟ <تصفيق> داستان ایران رو نپست کنیشون داستان کتاب مهاجرت آرید آه داستان ایران رو بر بر بر متاسفه هم شون ما کتاب ها رو سر میکنیم که ارزان بدیم که به دست جوانان برسه و چیزی یعنی در حقیقت درصد فروش برای فروشنده یا پخش کننده کمه اونا کتابه ما رو پخش نمی‌کنن. ترجیم میدم کتاب های دیگر رو پخش بکنن که بیشتر سود ببرن بنابراین این در بازار کم دیده میشه نه این که دیده نشه اما اگر خواسته باشید میتونید از بنیاد نیشه رو بخوایید برای تو میکرسد با شما تلفون 828-926 یواشتر <تصفحش> 828-926-27-84 بنیاد نیشه رو تماس بگیرید یه پیامه که اومده من خودم حالا میخواستم از شما بپرسم با دروت فرزنده فردوسی استاد فریدون جنویدی پرسش من درباره گل نوشته های حخامنشی گل نوشته ها گل نوشته, ها. گل نوشته های حخامنشی که بیش از هفتاد سال است در دانشگاه شیکاگو در بند هستند یسنا از تهران دروت بر فردوسی یسنا گل نوشته ها چی هست؟ این متاسفانه در زمان اولوی اولی مردار زیادی لوح اون زمان به گل می نوشیم دیگه تمام بله بله. بایگانی ها بوکل بود و سومر هم حچی بوده باگل بوده واسه اینکه ببرم خودتون فرمودی بله اینها رو که نوشته بودن به صورت بایگانی بود که در حقیقت داستان ساختشونه تخشمشید و حقوق ها بوده همین چیزایی که لازم بوده در اون گل نمشتون بود بعد مهنگامی که رهبری یک کشور عملیات رو ندونه گهش رو فرهنگی نداشته باشه پله اول اینا اینها رو فرستادن که بره به آمریکا و در اونجا خوانده بشه و این چند هزار گیل بیشتر رو متاسفانه بار کردند بردن به آمریکا و اکنون این آمریکای وحشی گاوچران انتظار داره که اینا از آنو باشه و کوف و وحشی و خشونت خودشو در اینجا به خرج میدی که ما اینا رو باید حراش کنیم تا پولی که از جیب در میاد رو از ایران بگیریم یا ضرره که ایران به ما زده بگیریم فکر نمی کنن که این یک یعنی یک گنجینه بزرگ ترین گنجینه فرنگی جوانه که به صورت امانت گرفتن خوشبختانه مقامات فرنگی دانشگاه شیکوکو این نظر را ندارن اونها تر هستن از اینکه وگر نه تا با حال واای حکووممت اینا این کار کرده بود. اون گفته رو راه رو همهل فخته بودن. خوشبختان دانشگاه زیر بار نمیره و گ ها هنوز برقرار هست ما امیدواریم یه روزی در اون کشور اندیچ ای باخرت همراه پیدا بشه و به دانشگاهشون یاری بکنه که اینا گرمشته ها به کشور مادر به کشور ایران بازگردن. اگر چه اروپا یک کارنمه های سیاهاهی داره در این زمینه چه آلبان چه فرانسه چه انگلیس تمام گ نوشته های ما بردن از جمله همین سنگ گلبشت که شخصی به نام قمز رساب پیدا کرده نام داره میگه هورم رسن من ایرانیم. ولی خب دستگاهی که کاگوش میکرد دستگاه انگلیسی بود دادن به انگلیس اینا همه درت ر آورد دانش بشری اما زمین جهان باید بیدار بشه که این از زیم بزرگ از کجاست زاده چه فرهنگی هست اینجا به وزار من نقشه سازمان های فرهنگی که هم نوا بشن و همگام بشن و یار بشن با هم و با خیام بدن بگید اگر خردی در اون سرزمین نیوشاه هست که این کار رو جلو بگیرند و گلنمشته ها رو بفرستم به سرزمین مادر من امیدوارم چون این کار خیلی خیلی بزرگ و عظیمه آمریکا جرعت ندر یعنی دولت آمریکا جرعت نکنه که اینها رو حراج برسونه و از همینجا هم درود میفرستم به رئیس و اعضا حیات علمی باندکار شیکاکو که مدت هاست که یه بار فشار دولت که کمر خم نکردم سرشون افاه شتر باد شاد باشن در آرزوی روزی که اینها رو میفرستد به کشور مادرش با امید خود ما زمان زیاد نداریم تلفن‌های های زیادی هم شده پیام های زیادی هم هست اگر داستان رو به انجام می من م... گمان می‌کنم کنم اینجا انجام بود یعنی اینجا ب... و همون پسندیدن که بامداد با فردا جنگ روپی آغازم. اگر بخوام وارد جنگ بشیم و دوه زمان زیاد میبره پس به کجا رسیدیم اینو رو بفرمایید که ما بدونیم الان روی چند پنج روی چند پنج این دفتر که رزم هومان با بیجن سپیدشو از کوخ سر بردمید به دامن تیر شب ناپدید از اینجا آغاز میشه با امیده خدا من الان رو میخونم تلفون های شما آماده هستش پخش میکنیم چون زیاد هستش میخوایم جواب داده بشه شرمنده شما بیشتر از این نشیم رازانه نام روستایی در شهرستان نهاوند به چه معناست؟ سهر خانم از خورم آباد درود بر خورم آباد سهر خورم آباد ور در برامین و بر بسیاری ورگرد و در نامهای به عنوان پسوند هست در ور هست اینا یعنی جایگاه یعنی ساخته ورا زانزانم یعنی جایگاه ورازان یعنی جایگاه ساخته شده و امیدوارم که مردم و رازان بر اون جایگاه ساخته شده شاد بله. پیران ویسه سلام سندن خدمتون رود گفتن خدمتون و پیران ویسه میشه توضیح بدید در مورد پیران ویسه پیران ویسه پهلوان توران بود منطقه البته همه تورانی ها ایرانی داشتن منطقه خب این چون نزدیکتر بود به مرز ایران مهر ایران رو بیشتر داشت و ما میدونیم که در هنگامی که سیاه وخش میخواست کرد توران گذر کنه پیران باید گفت که این،, این کارو نکن درست نیست تو مثل پرزند خواهی بود برای افراسی در همین جا ببند دل به اینجا ببند و بعدم بعد از مدتی گفت که چنانی که برگذر هستی تو بهترین که از دامان شاه کوهر بجویی بلاخره موجب شد که رو به ازدواج سیاوخش دربیارن پس از اینکه سیاوخش کشته شد او به سرعت خودشو رسوند و دیگه نگذاشت که فرنگیس کشته بشه یا فرزند رو بیندازند و اینها رو در پناه گرفت و بعدم که بچه به دنیا اومد فرستاد به کوه غلون یا غلا و نگهبانی کرد در هر صورت خورد برای فرزند سیاوخش کهخسرو اما خب متاسفانه وقتی که جنگ قرار میگیره این دو کشور اینا در روبرو هم قرار میگیرن. در همین جنگ ناخواسته که ما داشتیم با عراق خب کردستان. کردو همه ایرانی هستن. نه همه نشواد ایرانی میدونن که ایران هم کشور ما ولی چه کنن وقتی که دو سپاه با یعنی در واقع با توپ و تانک و با بمباردمان دارن روبرو هم میشن چه باید کرد؟ این کار بود که بالای بود که سر کردانم اومد. چند بود کردو حرکت کردن نمیخواستن در این جنگ شرکت کنن تا مرز ایران اومدن که مهمان کردان ما در این سوی مرز بودن مدت‌های زیاد این کار کردن پیران هم تو پیرانم که هم یک بار روستم بهش گفته بود هم اینکه گودرز بهش گفته بود اما خب نشد دیگه تا آخرم در این جنگ به زودی میبینیم که بر اثر همین جریان جانش از دست میدهید شما شنونده برنامه پنجره خیرگون خطاب هستید استاد فیدون جمیدی درباره شاهنامه فردوسی و دستان های شاهنامه برای ما صحبت میکنند تلفن های شما رو میشنریم شکر از برنامه خوبتان جناب هدایتی لطف کنید از دکتر عزیزان جنیدی سوال کنید که نظرشان در مورد سری کتاب نامه باستان بازمان دکتر کیتازی و کتاب شاهنامه و دستور مرحوم دکتر شفیعی با تخلص کیوان همشهری این جانب چیست متشکرم سید حسین صالحی غفرخی خدا حافظ. درود به شما و به قهر زیبا همه کسانی که کار کردن رو شانامه دست زاد، این در حقیقت میراث بزرگ فرهنگی جهان بشری و ویژه ما ایرانیانه همه با هم کوشش کردند ما هم داریم کوشش میکنیم راه درازه و باید برای رسیدن به اون کوشش بکنیم من یه خواهش بکنم از جناب دکتر از طرف نابینایان کشور که ما می‌خوایم از آثار ایشون استفاده بهینه ببریم، بهره بهینه ببریم. آیا برای مؤسسه ایشون امکان داره که این لطف در حق ما بکنن و کتاباشون رو برای ما مناسب سازی کنن، البته نه به صورت رایگان، صرفاً خاطر بهل حظیم و با هزینه جزافی همراه. اما به خاطر کتاب صوتی اگه آیا این امکان برشم شما که این کتاب هاشون رو به صورت گویا برای ما تولید بکنم و ما بتویم از آثارشون بهره ببریم بخیل تشکر میکنم ازشون متشکرم خدا نگفت درود بر شما دلو جان من همراه شماست محت... خوشبختانه من میبینم که از آغاز این برنامه تاکنون چند تن از نابینایان گرامی ما به ما مراجع کردن در همین زمینه پرسش داشتن البته گرفتاری مالی در بنیاد دونی که صد درصد ملیه و از هیچ جا یاری نمیگیره هست منتها فعلا برنامه های شانامخانی ما به صورت سیدی در دست هست اونا رو می‌تونید لطف کنید که بیان پروژه کنم، بگیرم، گوش کنید فعلا تا کم کم، بلکه خداوند بخواد دست ما بوشتر بشه، در این زمین هم کارهایی بکنیم. میده خدا سلام استاد جنیدی بنا بود در خصوص ماز و مازه صحبت کنند. ما در بوشهر هنوز مازه، ما مادر... در بوشهر هنوز مازه، مازه کار می‌بریم. فیاض از بوشهر درود بر شما یک بار گفتید بار دوان به من تحکیل کرد خیلی خوبه که من مازها رو فقط دنبالشون در, در مازندران نباشم و در بوشهرم دنبال ماز بگردیم بله ماز به معنی پشت کوهه و خوشبخزنی در بوشهرم به این نام هنوز هست سلام از استاد بپرسید معنی کلمه ریحان چیست؟ رضا از بیزا درود بر شما ریحان رو با هیجی میمونیسن و از ریاه و راه و اینا میگیرند گیرن اون نام ایرانی من گمان دارم که باهی دو چشم بر باشد و نام ریحان نام یک گیاه ایرانیه اون وقتی که معرف شد از ریحان به صورت باهیچی با می نوشه شد اون راه و روح اینا رو ازش گرفتن با سلام و خسته در مورد روز سیزدهم فروردین یا 13 بدر و اینکه هامون کشی اینا چه رفتی به هم داره سوالی داشتم از نظر دکتر جانیدی متشکرمم درود بر شما باید پاسخ بگم نه و متأسفانه یه مدتی یه جریانی داره رخ میده که کارهای فرنگی ما رو با سیاسات ها بکنه چنین نیست تیش... روز سیدام هر ماه به نام تیشتره ستاره تیشتر ستاره بارانه رحمت بارانه و ما یه بخشی داریم به نام تیشتریشت خیلی خیلی زیباست که از تیشتر خواهش میگن که آب به هفت کشور زمین هینه همه جهان برسونه دانه های ریز و دروشت و همه و سرزمین ایران هم آب، از آب برخوندار بشه برای این کار پیشتر از نوروز هفت دانه رو میکاشتن و آب میدادن و پس روز تیشتر که روز تیشتر فروردین که روز ما بزرگ داشته تیشتر بوده اینها رو میبردن به بیابونها و به رودهای روان یعنی باز و مرتب به خود تیشتر حدیه میکردن که تو به ما آب دادی و ما این گیهان رو بالاندیم و این گیهان رو ما باز پیشکش میکنیم و اگرچه به صورت بسیار ناقص ولی هنوزم در بین ایران ایران هست بلاخره سبزی نوروز و اگر یکی یکی اقلا نگه میدارن جانیان من تا مدتی پیش که روان شد مادرم بود میدم با اینکه پیرمرد پیر زن بود و دستنگ ولی اقلا سه تا سبزار رو درست میکرد یادگار هفت سبزاری باستان بوده ابدان این موضوع به آمان و آمکشی اعتباد نداره ستایش ایرانیان از خداوند برای دادن آب و ستایش تیشتره که ستاره بارون هست به هیچ روی به همدیگه اینا رو نیامیزید یه چیزیست درصد متلب فرهنگی رو با سلام و رو گشت گریان و پیشش نشست همه گرته بد و زخمش ببست گرته به چه معناست؟ آی هدایتی چند هفته قبل به گرته را اشتباه خواندند استاد فرمودن من با این کلمه برخورد نکردم این به در شاهنامه بازگشت بهرام به جستن تازیانه سروده شده سید بهنام رمضانی از یاسوج روستای بهده عنا در روز به یاسوج بهرام و بله قورته البته در نمونه های جدید قورته اومده این نام در زبان فارسی بوده کورتک کورتک یعنی پیراهن وقت در این زمان معرف شده شده قرطق با قاف و با تی دسته دار در های عربی ما قرتق داریم بعد خود کورتک کم کم به فارسی خلاصه تر شده شده قرطه که در تاکستان الان میگن قرطه این قرطه باز دوباره معرف شده به عربی به صورت قرطه دار اومده یعنی با قاف و تی دسته دار یعنی پیراهن این پوشش تن که این بعدن با افتادن میانوند ره در زبان فرانسه تبدیل شد به کوت و اینا همه ریشش در زبان پهلا کورتک یعنی پوشش تن به نام خدا خواستم در مورد واژه نوشدارو و کعبه زتاش توضیح استاد دما بدن همین از استام شرک درود بر شما نوشداری البته یعنی داروی نوشین یعنی داروی, داروی شیرین یعنی دارویی که درد رو درمان می‌کنه این و در ایران و باستان ما پزشکی در حدود زمان فریدون یعنی 6000 سال پیش پزشکی پیش رفته داشتیم که در نوشته‌های باستانی از فریدون به نام فریدون افسونگر یاد شده افسونگر یعنی چاره‌گر یعنی کسی که می‌تونه چاره دردها رو بکنه خوشبختانه یه چند از آثار سیت ها هم پیدا شده که نمونه های پزشکی رو در زمان فریدون نشون نشونده من در کتاب داستان ایران اینها رو خواهم آورد و در همون وقت ها هست که میبینیم که در حقیقت جراحی شده رو مغزه دختری 4850 سال پیش در سیستان یا اینکه دندون کشیدن یا اینکه چشم مستویی درست کردن یا اینکه در داستان و بزرگ ما رستم زاد میشه رستم رو با, با شکافتن پهلوی مادر همون سزاریان که معروفه میگیم سزاریان بله به پیچید سر زخ به خنجر به کافید بیرنج پهلوی ماه یعنی یعنی رودمه ماه به کافید بیرنج پهلوی ماه بپیچید مر بچه را راه چون شما اگه بچه بخواد به دنیا بیاد بود از دهانه زهدان بیاد بیرون ولی در موقعی که داره این عمل میشه باید سر بچه ر بیارن بالا از این شکاف بیارن بیرون یعنی حتی این موضوعی که در شانا مده ص درصد علمیه و ما نوشداره داشتیم و کارت پزشکی داشتیم و پزشکی داشتیم اندرو پزشکی رو من شر دادم الان میشه با ما وقت کم داریم دیگه نمیتونیم به شما به ساعت کنید باشه وقت دیگه باز تکرار می‌کنم اینا همه متعلق به نیاکان شماست و نوشتورم که دارو باشه نیاکان شما به جهانیان دادن خیلی از پیامک‌های شما مون تعداد زیادی از تلفون های شما هم ماند شرمنده شما میشیم اما می‌خوایم هم دوستان شاهنامه رو داشته باشیم هم ام صفتای آقای دکتر رو داشته باشیم متاسفانه نمی‌رسیم ببخشید برنامه‌های زیادی اومده تشکر کردن از برنامه تشکر کردن از شما و گفتن ما شاهنامه رو شناختیم دوباره و داریم می‌خونیم خیلی از دوستان گفتن ما تازه به جمع شما پیوستیم به طور اتفاقی رادیو رو گرفتیم و این برنامه بوده توضیح خواستن این برنامه هر یک شب است ما در طول هفته این برنامه رو داریم از شنبه تا چهارشنبه که سه شبش من در خدمتتون هستم یک شب یکشنبه شب ها هست. استاد فیدون جنیدی هستن دوشنبه شب ها آی دکتر صادری هستن استاد دکتر صادری هستن و چهارشنبه شب ها استاد بلخاری هستن روزهای دیگه هم یعنی شنبه و سه‌شنبه هم اساتید دیگه هستن همراه باشید با این برنامه در شبکه فرهنگ که دوست داریم در جمع شما در یک فضای خیلی صمیمی با اساتید صحبت کنیم استادان صحبت کنیم نمرم 19 شد امشب من خودم کم میکنم سفاس کدارم از شما شاد باشید با از شرفای دل و جان و روان دروت میفرستن به همه این کسانی که پیامک برسدن یا تلفن زدن و ما برخوردار نبودیم سعادتی یعنی نداشتیم که پاسخشون رو بدیم و پاسخ شما همه میر همه جان همه نیاز همه عشق همه آه، همه امید پیروزی برای شما با امید خدا. همکاران ما در برنامه تایی کننده آقای محمد رضا حاجی حیدری، صدا برداران آقای علی طاهری و آقای نورالله حیدری، هماهنگی پخش، آقای کازمی میلغاسمی و آقای محلی ابراهیمی، هماهنگی برنامه و ارتباطات آقای صحرا به ستایشمنش عزیز و من حمید رضا هدایتی راد سپاسگزارم از شما ایرانیان که برنامه ما رو شنیدید خدا یارو یاورتان باشد.